بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغصب كتاب غصب إذا غصب الرجل مالا أخذ برده زماني كه ميگه غصب كرد شخصي مالي را يعني أزروه ظلم مالي را بورد بدون الرضاية صاحب مالي را بورد او خیده به گرفته میشه به ردش یعنی اونو باید باز گردون بگردونه باید اون مال رو چکار بکند باز بگرداند و اجراتو مثلی و اجره مثل مثلا یه چیزی رو برده یه مدتی اون زمینی رو برده چیزی رو برده غیر از این که اونو بر بگردونه اون اجره و پاداش مثلش رو هم مزدش رو اجارهش رو بده هم اونو بر بگردونه هم اجره مثلش بده و ارش نقصیه این نقص و اگر قیمت کم کرده بود اون به اون اندازی که قیمت کرده اونو هم با کار میکنه؟ پرداخت میکنه ده خدا آورده کم کردن قیمت برای ای بی در متا در عرش مالی مختلفی رو آورده ولی این معنیش اینجا مراده پس عرش اون کم کردن قیمت رو میگن اون کم کردن چی رو میگن خاطر عیب پس و عرش نقص رو هم بده اگه نقص کرده بود اگه قیمت کم کرده بود اگه نقصی درش اومده بود اون قیمت کردن رو هم باید بده و این تلفا اگر اون چیز تلف شد اون چیزی که غصبش کرده بود چی شد؟ رد مثله انکار متصاوی الاجزائی مأمونت تفاق بلید اگر اون چیز تلف شد مثلش رو باز میگردونه اگر بود و مأمونت تفاظل منظور چیه؟ منظور که اگر مثل داشت اگر به اینیتی داشت نزید. مثل داشت از تفاظل در امان بود یعنی قیمت این با قیمت اون با هم دیگه فرق نداشتند پس اگر مثلی بود به عبارت ساده اگر مثلی بود مثلش رو چکار میکنه مزید. مثلا عنوان نمونه وزنی ها مثلی هستن. شما موقعی که یک کلو شکر رو تباه میکنی به عنوان اثال میگن خب یک کیلو شکر از بازار گیر میاد ولی یک گسفند مثل نداره به اینی. یک ماشین دست دوم مثل نداره یک موبایل دست دوم مثل نو چرا نو داره؟ مثلا یک ماشین پرایج صفر تباهش کرد یک پرایج صفر بش پس مثلی بودن البته اینو من میگم صفرها و هم دیگه مثلی هستن جایی از فقه ها ولی اینطوری هم هست مثلی بودن اونه که مثل هم باشند نه خوب چون و آورده بود در کتاب منهجی که مثلی نیستند ولی اینجا یه تفکیه که قائل شد درست دست دو ها و دو ها مثلی مثلا ماشین شما رو تباه کرده ماشین کوهنهی کوهنهی سر جاش بیاد مثل نداره مثل؟ بله ولی نوها فکر به من؟ نظر من نوها مثل دارن نوها تو دارن؟ ورد قیمتهو الم یکلهو مثل اگر تلف شده بود و مثل نداشت قیمتش رو باز میگرداند و لم يكن و قیمتش رو باز میگرداند اگر مثل نداشت چه قیمتی رو میگه؟ اکثر معکان من وقت الغصب الى حين التلف بالاترین قیمتی رو از اون لحظه غصب تا زمان تلف داشته اونو بشمیده چرا؟ چون اگر جنس دست صاحبش میگود میتونست در اون لحظه که بالاتری قیمت داره اون چیکار میکنه بفروش ولی این آقا غصبش کرده ولی این آقا چیکارش کرده پس اینجا اگر چیز تلف شد مثلی بود مثلش میده مثلی نبود قیمتش رو میده و در قیمت نگاه میکنن از اون روزی که این آقا اینو غصب کرده تضمن لهذه كي تلف شده بالا ترین قیمتی که اون جنس داشته اونو چیکار میکنه غاصب پرداخت میکنه ولو غصب عبدا فقطعت يده بسرقه استهدفها عنده غرم اكثر الامرين من نصف القيمه او ما ناقص بله میگی اگر غصب کرد برده ایران پس دست اون برده قط شد به سبب دوزی که در نزد این آقای قاسب اون دوزی رو کرده بود این برده دوزی کرده دستش قط شد ولی زمانی این دوزی رو کرده که در نزد این آقای کی بوده قاسب بوده میگه غرم جریمه میشه اکثر الامر بیشتری از میان دو امر بیشتری من نصف قیمت یا نصف قیمت او ما نقص یا اون قیمتی که کم کرده چون به سبب قطع دوز برده قیمت کم میکنه نگاه میکنیم کدوم یکی بیشتره آ نصف قیمتش بیشتره یا نه اون پولی که الان کم کرده مثلا نصف قیمتش صد هزاره قیمتی که الان کرده 120 هزاره، ما میاییم 120 هزار رو ازش میگیریم. اگر نه قیمتی کم کرده بود در بازار به خاطر این 50 ای ای هزار بود، نصف قیمت 10 هزار بود، اون موقع کدوم رو میگیریم؟ هزار میگیریم. ولو غصب جاریتا تساوی 1000 فمرزت هینا حتا صارت قیمتها تساوی 100 ثم بارئت حتى صارت قيمتها ألفا ردها ورد معها تسعمائة قدر نقصها ولا يجبر النقص بالزيادة لأنها ليست له ميقى <تصفيق> أقار غصب كارد كاني زيرو كمصافيبا بود قيمته اشتبود هزار بود و اون جاریه مریض شد اون کنیز چی شد؟ تا اینکه قیمتش گشت سد قیمتش چند گشت؟ سد ثم باری اتحاد تصارد قیمته آلفا دوباره سالم شد اون کنیز تا اینکه قیمتش دوباره به هزار رسید رده میگه برمیار این جاریه رو و رد معها تسویعتن و بعض می‌گردان همراه این جاریه 900 تا به اندازه نقصی که کرده بود به اندازه نقصی که کرده بود خب الان نقص کرده 900 تا نقص کرده بود فقط 900 تا ارزش داشت ولی دوباره اومده میگه 1000 الان چرا بیچاره مثل... چی سینگ بیچاره بیچنکی چرا الان خاصه باید Uh, 900 تا بر بگردوله دلیل میگه میگه والا یجبرون نقصو به زیادتی اون نقصی که کرده کنیز 900 تا قیمت کم کرده موقعی که بیمار شده میگه جبران نمیشه با اون زیادتی که بعدا دوباره قیمتش رفته بالا چرا؟ لأنها ليست له چون این بالا رفتن قیمت مال اون آقا غاسب نیست مال مالکش کشه مال کشه؟ این هم حکمیه که اجتهاديه البته انتيه بزرگان شافعيه اينو دادند ولو كان نقص قيمتها لنقص السوق لم يزمنها إلا مع التلف أما اگر نقص قيمتش بخاطر مريضي نبود ها به خاطر ایبی نبود که كغ... غاصب سببش بوده یا در زمان غاصب پیش اومده به خاطر بحث بازار بود بخاطر خاطر بحث چی بود بازار بود اینجا دیگه میگه ضامن نیست مگر اینکه تلف بشه مگر اینکه تلف بشه و اذا غصب ذات الفرج فوطاها حده ولز و مهر المثلی میگه زمانی غاصب غاسب غصب کرد فرجداری رو و نزدیکی کرد با اون آمیزش داشت با اون حد اجرا میشه بر غاصب و لازم میشه برش مهره مثل فان این اولدها و هی امتون کان مملوکن لصاحبه اگر بچه دار شد یعنی اون زن. و کنیز بود فرزند اون کنیز مال صاحبشه نه مال اون خاصیت و زمینه انطلف و زامین میشه اگر اون بچه هم در اون مدت چه بشه بشه ولو غصب عنبا اگر غصب انقور رو فاعتصره خمرا اونو ازش خامر بدأ صابرت ازش شو بدأ صابرت غريم قيمته بعد قيمته شو ببارداز بعد قيمته انقوره فإن صار الخمر خلا ارتجعه المالك ولم يرد القيمة اما اگر دوباره تبدیل خمر تبدیل به سرکه شد میگه اینجا دیگه بر میگردونه مالک اون سرکه رو ولم یاروند القیمه و قیمتو باس چون اینجا دوباره تبدیل به چیز حلالی شد انگور که تبدیل به شراب بشه شراب حرامه باز غرامت بده ولی دوباره به سرکه بشه سرکه دوباره چیه؟ حلاله ولو غصبه بذرا فصار زرعا اگر غصب کرد بذرو ببین دوزی با غصب فرق دارن غصب یعنی که بدون رضایت طرف تو اون چیکار می‌کنی میگیری اگر غصب کرد بذرو پس تبدیل به زرع شد اون بذرو او نون فصار نخلا یا غصب کرد حاسترو وتبديله بالنخل شد ارتجعه المالك بزرعه وثماره ولم يلزمه ما أنفق باز ميگردونت مالك اون زرع ولازم نيست برمالك مالك خرج کرده است كي ولو غصب لوحا فبنى عليه سفينة اگر غصب کرد تخته و با آن درست کرد سفینه کشتی او حجرا فبنا علیه حائطا یا سنگ و با آن دیوار درست کرد ردهو بعینه عین اون رو برمیگردونه یعنی اون لوحارو برمیگردونه و اون سنگارو چکار میکنه و انس تزر اگر چکه هم زرر ببینه غاصب غاز زرر كرده بالدرع. در من هذه يلو بزبانه سادة توصيده. ميجي غصب بخشبة فوضعت في بناء، فوضعت في بناء، أو سفينة وجب نازقها وردها وإن تحدم البناء أو غرقت السفينة، آه، ويلزم الغاصب أرش النقص للمقص منه ولصاحب البناء أو السفينة إن كان غير الغاصبي. و جهل الغصب و اجهل الغصب کما یلزمه اجرت المثلی انکانه لمثلی ها همین مسئله رو جا توضیح میدیم اگر غصب کرد چوبی رو که در ای قرار داده شد یا در یک کشتی قرار داده شد واجبه که این چوب کشیده بشه مثلا چوبارو دوزیده و بعد رو سخف کرده اینا میگه واجب کشیده بشه یا در یک کشتی واجب کشیده بشه و اینا برگردانده بشن اگرچه که اون خونه خراب بشه اگرچه که اون کشتی غرق بشه و اگر نقصی هم درشون پیش اومده بود بر غاصب لازمه که اون عرش و اون کم کردن قیمت رو جبران بکنه هم برای اون اگر برای اون چوبا که ازش مخصوب ملح یعنی آه برای مخصوب ملح هم باید جبران بکنه هم صاحب بنای سفینه آه مثلا چوبا رو غصب کرده کسی داده اون بیچاره نمیدونه یا غصبیاند اون صاحب الان میاد از این میگیره میگه برای این هم باید جبران بکنه برای اون مخصوب ملح هم چیکار بکنه درمان هجيا ورده ولو غصب خيطا فخاط به جرحا مخوفا من حيوان محضور النفسي وقر وغريب القيمته اگر غصب كان نخيره ودوختشد باقان زخمي زخم مخوف زخمي كي سبب هلاكات مشي از يك حيوان محظور النفسي بود أه؟ یک حیوان محضور نفسی جرحی داشت و با اون نخ که این آقا غصب کرده دوخته بود اینجا میگه دیگه اینو نمی کنه او قرره اون نخ اونجا ثابت میمونه بلکه قیبت اون نخ غصبی رو چکار میکنه این آقا پرداخت میکنه ببین فقه های قدیم من کاری به مرزو بودن و ارجه بودن فقه ها ندارم، از میان فقهای زیادی که بوده یکی قولش، اولا اجتهادیشون، یکی قوی تر از دیگری میتونه باشه ولی بحث روی این الگرایی این ریزوارد شدن شدنها اون در عمق مسائل های باور کن شما کتابه قدیم رو باز کن بدون تعصب ما در اسلامی باشه اونو رو بعدن بیام مال ظاهریه رو بخون. یا اونایی که منحج ظاهری دارند یا اونایی که یعنی کاری به علل ندارند هرچه ظاهر اومده یک تفاوت خیلی امید می شما متوجه می گرچه ظاهری ها اونها رو زیر سؤال می که شما نص بیارید ا خب بابا در نس که همه چیز دقیق نه و اگر اینجوری می بود شریعت اسلام با هزاران جلد کتاب داشت شریعت اسلام با شکل قواعد کلی اومده به شکل چه اومده تطبیق دادن این قواعد کلی رو روی رو جزئیات روی مسائل ریز رو وظیفه مجتهد وظیفه کی مجتهد ولی افسوس که این فقه اون فقه پویای صدر اسلام هم اذهانی که ادعای اي از فقهار میکنن از بین رفته هم از اونایی که خودشونو بقولی آزاد میگیرن. الا ما الا ما ولو غصب ارضا فنقل عنه ترابا رده الیها ان اگر غصب کرد زمینی رو و خاک رو از اون نقل کرده بود خاک رو بر میگردونه اگر باقی مانده بود و غری اکثر الامرین من نقص الامر او قیمت ترابی انحاله و اگر خاک موجود بود اون خاکی که اگر از زمین غصبی نقل کرده بود خاکو بر میگردونه اگر موجود نبود غرامت میده اکثر امرینو غرامت میده اگر نقصی که زمین کرده بود قیمتش بالاتر بود خاطر این نقل خاک این قیمتو میده قیمت نقص زمینو رو... اگر نه قیمت خاکا گرونتر بود... زمین قیمت کم کرده. مثلا کم کرده بود ولی هزار تومن. اما قیمت خاکا که برده بود سد هزار. اون موقع این هزار میده. اما اگر نه قیمت خاکا کمتر بود. کم کردن زمین قیمتش بالاتر شده بود. اون موقع کدوم رو میده؟ قیمت رو میده. پس وقالی ما اکثر الامرين من نقص میده الامرين رو أكثر يكي أثدوكار رو يا نقص الزمين يا قيمة التراد هر كدوم كي بيشتر بود قيمة شود أولو ميده إن هلك أغرخ أول خاك هلق شده بود ولو حفر بئرا، ولو حفر فيها بئرا وردو بها المالك كان للغاصب طبوها إنشاء ليبرا من ضمان ما هلك فيها أغر كان ده بود درون زمين غصبي چاهيرو وراضي شد بأن مالك مالک زمین غاصب این اجازه رو داره که اون چاهو از بین ببره خاک توش بریزه اونو چکار میکنه بکنه؟ تمش بکنه چرا؟ چون روز اگر یکی تو چاه بیفته از این زمانه در امان بشه از این زمانه چی بشه؟ حالا که زمین غصبی رو تحویل داده چاهی توش کنده میتونه این اگر مالک راضی بشه غصب میتونه اینجا هجی چکار بکنه؟ خراب بکنه اگر فردا روز یکی بیفته زامن نشه زامن غرامت روش نیاد ولو غصب غسلن فنازجه و اگر چقدر قشم بحث کردن مفصل خدا این فوق هرچز آخر میگه اگر غصب کرد تعمیر رو نه اینجا نرسلیم ولو غصب غزلن فنسا جهود خوبه اگر همون چیا هستن ریسمان که از پشن میگیزن اگر میگه اون غزل رو غصب کرد دیدی دیگه این پیرزالا قدیما الان تو منطقه خودمون نیست ولی من یادم ایک قدیما درست میکردن با پشم. درست می بافتن اینو تبدیل به ریسمانش می‌کنه میگه اگر غزلی رو غصب کرد حالا فارسی خودمون انقدر قوی نیست که هر لغتی رو واقعا بتونیم اون لحظه تا حتا یعنی از بس که تو جامعه حرف نمیزنیم حضور ذهنیمون اون لحظه نیست بهوا گرچه بعدم بیا که به دردی نمیخوره میگه اگر غزلی رو ریسمان بافته شده ای رو غصب کرد فنسجه ثوبا و اونو بافت تبدیل به ثوبش کرد تبدیل به پارچش کرد او فلطن فطبعه ورقن یا غصب کرد نقره رو و اونو تبدیل به ورقه کرد مطبوعش کرد تبدیل به ورقه سکش کرد او ظهبا فصاقه و حلیه یا غصب کرد تلار و اونو تبدیل به زیورالات کرد اخذه المالک علا حاله انشاء بر داره اونو صاحبش بر اون حالت این به حالت لباس بر حالت ورق بر حالت زیبرالت اگر خواست و لم یکن للغاصب اعادته الى ما كان عليه غاصب حق نداره بر بگردونه اونو بر حالت قبلیش ولا ان یرجع بما انفق وحق نداره که باز بگردونه خرجی رو که کرده اینو تبدیل به مثلا زیورآلات کرده اینو تبدیل به لباس کرده اینو تبدیل به ورق کرده این خرجی روک کرده حق ندارید چیکارش بکنه بازش بگردونه ولا غصب طعاما فاطعمه اياه رجا بغرمه اذا لم يعلم به عند اگر غصب کرد طعام رو فاطعمه اياه و اونو به خودش چیزی که من میفهمم از این جمله البته این در مختصر مزنی اومده چون میدونی چیه این کتاب در واقع مختصر از خاوی و هاوی شرح مختصر موزنیه خب حاوی کبیر بهش میگن میگه اگر غصب کرد تامی رو فا اطعمهو پس فسخوران این تامو به خود اون طرف راجع به غروی باز میگردونه اون غریه غرامتش رو جریمه شو ازالم یعنبیه به اکله زمانی که اون طرف که خورده بود اون غذا رو ندونست موقع خوردن که این غصبیه این چیه؟ اما اگر نه شما غصب کردی دادی به من من هم خوردم در حال که میدونستم غصبیه اینجا داستان چیه؟ فرق میکنه شما اصلا مال منو دوزیدی مثلا خدایی نکرده غصب کردی به من خودم دادی خب من ندونستم موقعی که اینو خوردم ما خوردمش اینجا غرم بر شمایه غرم بر کیه؟ ولایسی حبه الغاصبی و این اوجیز صحیح نیست فروختن شخص غاصب اگر چک اجازه داده بشه بعدش چرا؟ چون ما قبلا در بحث معاملات خوندیم شخص نمیتونه بفروشه چیزی رو که مالکش نیست اگر چکه بعدش اجازه داده میشه و لای انفلو اطقه و این و جاری نمیشه اطقش یعنی اطق غاصب. اگر چکه مالک هم بعدش بشه چون زمانی آزاد کرده که روز مالک غاصب بوده ولا يضمن ما استهلكه من خمر او خنزير على مسلم او ذميا والضامن نيست البته بله بس بي غاصب صحيح نيست وإن وجيس اگر چك اجازه داد در شه مگر با تجديد بي كون داسانش جداء ولا يضمن ما استهلكه من خمر والضامن نيست چرا که حلاق بکنه از شراب او خنزیر یا خنزیر علی مسلمین او ذمین چی مال مسلمی باشند اینا چی مال ذمی چرا چون در پاورگی آورده میگه قاعده وجود دارد هر چیزی که حرام باشه درش زمانتی نیست بله. بس تا اینجا کار کتابه غصب؟ تمام شد